در قوری چینی بند زده کنار آتش رنگ چای به منافشی میزد و رویش داغمه بسته بود و در زکند لب پریده پهلوی سینی قند و کشمش و خاکستر در هم بود هسیری که بر کف زمین پهن بود جای جای با سوخته بود و نمد زیر منقل غیرگون بود هوای حجره مخلوطی بود از زفیر تبدار و دود تریاک و بخار آب چند شبان روز بود که ملا سالح در کنار پسران سکین خانم در کاروانسرا پلاس بود از حجره تکان نخورده بود همانجا خورده بود و خوابیده بود و تریاک کشیده بود پسرها شیره و بنگ هم میکشیدند و همانطور لول پی لول و وافور پی وافور و نگاری پی نگاری بود که دست به دست میشد ملا صالح به پسر بزرگ سکین خانم که مشغول تراشیدن سوخته تریاک از میان حقی بافور بود گفت یه دقه اینه کنار ببم نگاهیم دست نگیم من با تو دو کلام حرف دارم پسر بزرگ که چشمان از فرت کشیدن هشیش و افیون کلاپیسه میرفت به خرت خرت تراشیدن ادامه داد و خورده های سیاه تریاک سوخته را از حقه به داخل جام مسی ریخت که پر آب بر چراغ نفتی بود و به ملا صالح گفت حرف چیز است ولکن ملا ایر مچل میخوای یادان کشمش بزا دهنت ولا بافورت فردا اینه بشیش به و برود و یک بست دیگر تریاک از تریاکدار فلزی برداشت و به طرف ملا صالح انداخت ملا صالح تریاک را در مشت گرفت و گفت این بافود درست دود نمدد نمدانم حقش ترک دارد یا سوراخش مثل سوراخ کن ما گوشباد است پسر کوچک سکینه خانم که چون نش به موازات منقل دراز بود گفت حقه که دود ندد از خاک آدم بیش است بالا بندازش دور. پسر بزرگ همچنان با قاش و قک سرگرم بود و سوخته ها را از گوش و کنار درون حقه می تراشید و به ملا ساله گفت خواهم بافور کیک وردا که حقی ناصری دارد ملاساله گفت چوب کهور که بهتر از کیکمه بالام چوب ای بافور کهور از حقش بده است امامه و دستار را بر سر گذاشت و قطعه تریاک را به قوطی حلبی پرشالش منتقل کرد مرغومه و سلطنه را که همان روز براش از قزین به رودبار ساده بودند از خرمدان در آورد نگاهی مجدد آن انداخت و با سر انگشت روزها راش مرد اگر خطبه اخت را همین امشب جاری کند و فردا با عروس راه بیفتد درست سر موعد به دار و میرسد و سر بخت عروس را به هجلگاه میرساند ابا را به دوش کشید و خطاب پسر بزرگ گفت وخی بخواد وخی ببا منم به برپش سکی نخوانم یه عرضی باشش داشتم وخی باز پسر کوچک جواب داد ما با بار ننه سک نمیشد حرف زد یا نش از چرت میکرد یا خمار از و چرت میزنه. ملا ساله پستید مه سکی نخانه من دودی ازش ایش نمدانستم ایش نمدانستم پسر بزرگ گفت حالا یه سه سالی میشد از برادر کوچیک سوال کرد چند وقت از شوهر ننمان مرده سه سال میشد برادر کچک گفت نخیره دو سال و دهما چه میشه؟ آوی بله، بله، یه سه سالی میشه که ننه غیر فوت کرده توی بافور کاری نکرده، ما گناه کار شدیم ما بعد مرگ شوهر ننه گفتیم و یه بس بچس با ننه، یه خصف قصده نخور، هماشون، بس تزد یه ای بافورم بالش نیفتند. در جام مسی آب و تفاله تریا سیاه می و هیاهو میکرد. ملا سالح به طرف پنجره حجره رفت و نگاهی به بیرون انداخت و گفت و سیل بسوزد بالام اینجا چه ویران است پسر کوچک ناگهان از حال نش درآمد و چهار چارزانون کنار منقل نشست و با انبار به برهم زدن دانه های زغال و گل های آتش پرداخت بعد با قلمتراش شکته که از لول کهربایی رنگ تریاک برید حقه چینی وافوری را که از چوب زرد کیکن بود گرم کرد و بس را چسبان زغال افروخته را با انبار نزدیک تریاک نگه داشت و دم جانانه ای از پستانک که گرفت بعد با سوزن دراز و کجوکوله ای به سوراخ روی حق میل زد و بلوزنه تریاک را با کناری سوزن جمجور کرد و گفت هرچه بود و نبود رفت بابارم خانه آباد نمانده است هزار درخت زیتون از ریشه درم ده نفر آب برد پس بخواست ویران نباشد خب از چار ستونه کار پا بر برپا مانده است ملو ساله کنار دیوار چندک سد و پوسید درختان شما چه شد صدمه که ندید است انشالله کدام درخت بالا رفت همه رفت از مال ما یه دانم سر پا نیست نم دانم خرچ دود و دمه ما امسال از کجا تعمیم بشد امید به همی درخت های زیتون زیدون نه نه گفت خودتان درختار را بفروشید آن پولی ببرید و جز جز تلیاک را روی حقه درابرد دو سوتون دود از دو حفره بینی بیرون داد و تحمانده بس را با تیغ از روی حقه تراشید و اضافه کرد مروف استاده از پیلن خود سیاه سر به است چیزت بفروش ما که سیل برده است هیچ یه دارم نمانده است تو چه دست رفته است انگاری از تو ه سیکو ملا ساله اینگاری است تو همی سولاخ شده است رفته است اتاق اشباه بود از غلغل شیره و جیرجیر جیر, جیر تریاک ملا صالح نگاه را از این برادر به آن برادر و از آن برادر به این برادر گرداند و در نهایت به این نتیجه رسید که هیچ کدام رمغ برخاستن و با او همراه شدن را ندارد پس تنها به طرف در حجره را افتاد و گفت ایر شد باز سری میزنم از پسرهای سکین خانم جوابی نیافت بیرون در کاروانسرا لوتی مفلوکی از دایره زنگیش صداهای ناموزونی در و سعی داشت پسر بچه زرد روی سردرشتی را به رقص وادارد پسرک کله بزرگ و دست و پای ملخیش را چون عروسک شیم شبازی حرکت می‌داد و چشمهای مقمومش را بر صورت دو سه خورده بچه‌ای که تنها تماشایان معرکه بودند می گرداند. مسیر عشق بر صورت خاک خورده پسر، خطورت روشنی بر زمینه که در رسم کرده بود. لوتی دم گرفت. د قرد بده. پسر که داد. مدم خو. لوتی گفت. قمیش بیا. میام خو. چول بزن. زنم خو. د ناز بیا. پسر ناگهان میان میدان نشست و به فریاد رو نگو. دیر نم تنم. نازه دیر نم, نم و باز اشکش ترازی شد. لوتی دستش را برای کتک زدن پسر نافرمان بالا برد که صدای ملا صالح بلند شد هم ولایتی منزل سکینه خانم قزینی را می‌خواستن مشناسی تا از سؤال غیر منتظره ملا صالح دست لوتی در هوا خشک شد و خشمی را که نسبت به پسرک داشت متوجه آخوند کرد و گفت هیچ به کله پدر خروس بی‌محت حالا چه وقت گپ است خیر نمی ننت که نمزارد زندگی ما نابود کنی ما آخر مگر مرکه مولا صالح اخطفی بر زمین انداخت و آب بینی را به کمک آسین آبا بالا داد. با بالوتی با انتر مرده هم, هم گذاشتن به ما نیامد است. خدا خرش شناخت بشه شاخ نداد. و رو به طویله رفت افسار علاغش را به دست گرفت و پرسان پرسان به طرف منزل سکین خانم راسه بود. از خرابی رودبار در شب ورود فقط شبهی دیده بود. تمام شهر تا گلوگاه در لای بود. دار و درخت دیوار سر هم خوابیده بود. سطل و رتل و کاسه و کوزه شکسته مسیر را فرش کرده بود. اینجا و آنجا لاشه مرغ یا گوسندی از زیر تله آوار زباله بیرون زدی بود. بوی عفونت در بعضی گذرها چنان بود که گویی مبال دهن باز کرده است. در کویها سگ لنگ و گربه زخمی بیش از آدمیزاد به چش می‌خورد. ملا سالح به هر کس که می رسید سراغ خانه سکین خانم را می گرفت ولی علائمی که گذرندگان نادر به عنوان نشانی به دادند دادند برپا نبود تا محل را پیدا کند. هر بار که پای خود یا اولاغش به چالهی رفت منزه السلطنه را نفرین کرد. مگر دختر در آن تهران خراب شده قعب بود که او را پی دختر سکین خانم فرستاده. حالا گوه زیبایی قرص قمر باشد پنجه آفتاب باشد دخت نارنج و تورنج باشد دختر شاه پریان باشد مگر این عروس قرار از چه گلی به سر مادر شوهر بزند که من از زهستتن چنین خواهانش است ملا اسمش صالح نیز اگر این معما را حل نکند و سر از مطلب در نیاورد می رفت و می گفت و لعنت می تا بالاخره به خانه سکین خانم رسید که خشتش بر جا بود ولی دیوار خیاتش فرو ریخته بود و تارمی جلوی ایوان از جا درآمده بود و حوز میان حیات را لجن باشده بود جوان چهارده پانزده ای که زخم سرخ و زرد کچلی تا پشت گردنش را پوشانده بود کنار دیوار شکسته سر پنجه نشسته بود و با چوبی بر گلولای شیار میکشید ملا صالح ندا داد و جوان که از جا برخاست ملا دید شلیز و شلوار پوشیده است ملا صالح چشم‌های تراخومییش را تنگتر کرد و دختر را با دقت نگاه کرد و پرسید تو مال خانه سکینه خانمی؟ دختر مدتی ملا صالح را برانداز کرد و بالاخره با تکان دادن سر پاسخ مثبت داد. ملا صالح زیر لب ویش جون و صدای بلندتر اضافه کرد برو به اهل خانه بگو ملا صالح است راه دور آمده از با سکینه خانم کاری دارد. دختر به طرف بنا رفت و ملا صالح هم با فاصله به دنبالش وارد خانه شد سکین خانم بالای اتاق وسیع و کم اساس به مخده‌ای تکی کرده بود و به دیدن ملا صالح چادرش را بیشتر روی صورت کشید و گفت بفرمایید آقا میرزا عبدالباقی که چهار زانو جلوی سکینه خانم و کنار صندوق چوبی نشسته بود چشمی قره به طرف ملا صالح رفت و یا از از گوش گفت و سرش را به کاغذ های داخل صندوق گرم کرد. ملا صالح بعد از سلام علیکم قلیزی همون پایین در نشست. رعیت کجین پوشی یک استکان چای و یک نلبکی قن جلوی ملا صالح گذاشت و, و منقل به خاکستر نشسته را از کنار سکین خانم برداشت و بیرون رفت. سراسر اتاق را قالی بزرگ رنگ رو رفتهی پوشانده بود که مثل بقیه خانه بهروزی را پشت سر داشت. بر روی رفها چراغ‌های زنبوری پهلوی چند کاسه بشخاب مرغی چیده شده بود، دو سه رختخواب پیچ در گوشه اتاق بر هم سوار بود، مخمل صندوقهای ته اتاق گرد گرفته و خاک خورده به نظر می آمد، آقا مرزا عبدالباقی از بالای عینکش نگاهی دیگر به ملا ساله به این امید که قصدش را از آمدن بخواند. به هر منظور آمده بود، به این زودی ها نیت رفتن نداشت. کنار دیوار ولو شده بود و امامه را بالا زده بود و چشمها را نیمه بسته بود. آمیرزا وقتش تنگ بود، مگر این آمد رفتا چقدر مداخل داشت که این همه وقت زرفش کند. باید هرچ زودتر سنگها را با سکین خانوم واب کند و روانه غزوین شود. پشت به ملاس خاله کرد و از صندوق چند بنچاق و غباله در آورد و از روی آنها به صدای بلند خواند. باغات میوه در میان دیالاباد و جوهرین شش دانگ دکانهای بزازی و بقالی واقع در زنان بازار. یک کار در محله دیما جمع مسجد آقا حسین خان، دوازده دکان مقابل مسجد شاه سه دانگ حمام واقع در محله تندور سازان یک دانگ ناموایی نزدیک کوشه میخ سازان دو سنگ آب قنات رودخانه در دار سلطانه غزین دو دهنه دکان تنباکو فروشی یک باغ زیتون در رود بار و سر را رو از روی قبالجات و بونجاغا برداشت و سکینه خانوم را نگاه کرد از سکینه خانوم فقط لبان بنفش چروکیداش پیدا بود دستهای سفید بیزینت و پر رگش که زانوی را بغل زده بود آقا میرزا عبدالباقی پرسید حواستان با من است اینا همه رفت است یا به فروش یا به گرو یا به سیل ممانت خانه قزین که به گرو پیش من است حالام خالی افتاده است در فکر بودم بلکم اجاره برد واسطه فرستدم خدمت فرمان فرما که الان به قزین است نخواست رفت منزل شهانزده عدلالممالک که نم پس ندر دیه ای خانه است که نیمه ویران است کار ونسرام که میدانیتآن قروق آقازادههااست من دیگر چه ارز کن باز از سکین خانم صدایی در نیامد میرزا عبدالباقی عینک را روی دماغ جابجا جا کرد و گفت زبان درازی است ولیکن اولاد ذکور مرحوم اسد احمد که حالشان پیداست. از مرحوم امیز که هم که صابولاد نشودید. از مرحوم خانم که همین نداریتون. و با سر به دختر کل سکینه خانم که حالا کنار مادرش بر تو نشسته بود اشاره کرد. ملا صالح به زخم کله دختر ماتش برده بود با خود میگفت فللا من سر در بیارم. عجبا ماهو خورشید که سهل از به قمر بانی آشم ایه ستاره گوشه باشد؟ ولی همه گوشش به آقا میرزا باقی بود. میرزا ادامه داد. ایه از روز اول به صلاح و تقوای من اعتماد کرده بودیتون؟ خال سجاد از سپرده بودیتون به من؟ حالا دستکم چند تا تکی براتم مانده بود والا. به ای همه مال و مکند آتش افتاده بود هنو که هنوز از دودش هوا میرفت یعنی هم آتش افتاد حالام دودش است که هوا میرد منتها از وراه بافود و سر را ابتدا با تعسف تکان داد و بعد به طرف ملا صالح گرداند از او تصدیق بقیه بقیهٔ نشعه که که سر ملا صالح خورده خورده می پرید به شنیدن این سخنان در دل حیحات میگفت که این همه زیر گوش بود و از زیر دماغ گذشت، شیخا، شیخا. اگر اموال اشرف الحاجیه را ملا محمد اسماعیل برد و خورد، ملا صالح هم می توارث املاک سکین خانم را صاحب شود. اما گذاشته بود و گذشته بود، و چشم کورش هیچ ندید بود. بخت ما شور است ولی. و به صدای بلند گفت: "سای میفرمایید، آمیزاد؟ همین است که فرمودیدتان بعد سکین خانم همچنان زاکت میز عبدالباقی رو به او کرد و ادامه داد حالا میل میل خودتان است اگه تا اینجا رو براتان تعمیر کنم خانه غزین شیشتانگ ببرم اگه نه نقدی نم موجود است مرهم کنی تا تا خانه از گرو دراد اینجا رو به امان خدا بسپاید تا یه سیر دیگه بون هم ببرم ملا صالح به فکر فرو رفته بود کم و بیش داشت دستگیرش میشد که منزه سلطان در پی چه بوده است و چرا ندیده خواستار دختر سکینه خانم شده است عجب کشکی منزه سلطان حسابیده است که همه دوغ پتی وقتی که بداند سکینه خانم بر بودیان نشسته است چه خواهد کرد تکلیف خلعت او در میان چه خواهد شد اگر واقعیت را به گوش منزه سلطان برساند که فاتحی اجر را باید فوراً بخواند برای سقاه خانی نساخته که شم روشن نمی‌کند اگر این عروس آش و لاش آس و پاس را برایش ببرد که نتیجه پیش پیش معلوم است چنین توفیق مشتلق برنوی دارد عجب کلاه گشادی دارد بر سر منصول سلطانه و عباس خام میرود خوب خود کردند ملا صالح که در این میان مشیر و مشار نبوده چرا باید عجر زحمت او پایمال شد از راه دویده و کفش دلیده نقل اوست و خرش تا به این خراب رسیدن نیمه جان شدند پول عیاب و زهاب و خانچه و آین شمدان و شاهی سفید شاباش را از جیب بپردازد حالا درست است که او زاغ و مازوی خط این کار نکرده است و جز مخارجی چیز سفر هنوز چیزی از کیسه نداده است حالی منزه سلطانه که جواز خرید را داده است چرا به دلیل درایت ملاساله پولش در صندوق منزه سلطانه بماند؟ ولی قبول که ده شاهزاده شاهزاده ده سفر میان قضی رود رودبار را تعمیم میکند ولی شاهزاده و منظه و سطنه که آب و گابشان یکی نیست شاهزاده اصولا نظر ملا داشته چه اخوی کرد ملا ساله که زری و جان ماز را با خود نیومد تفیل این توفا به سکین خانم پوستین به گازور دادن است باید سیاست داشت و پول و مجدگانی را هم وصول کرد باید حباس را جمع کرد و راه چاره را جست مسافر را از کالسکه پیاده نکرده باید از در عقب رفت و خلعت را گرفت بعد عروس را از دروازه به داخل فرستاد و دامن به دندان گرفته از محل دوش قند دومی که ملا صالح در دهان گذاشت زغزغ دندان را که دو روز بود به برکت دود تریا کارا هم گرفته بود دوباره به راه انداخت ملا صالح تهمانده چای را هرد کشید به این امید که درس را هم با خود بشوید و پایین ببرد میرزا عبدالباغی هنوز در انتظار جواب سکین خانم بود و از جا, جا کردن پا و بررفتن رفتن به کاغذها آثار ناشگیبایی در رفتارش نمودار سکین خانوم آهی کشید و زانو را رها کرد و شستش را میان لبها گرفت در نهایت گفت اختیار با شماست میز باقی. من اینجا ماندگارم دیگه کجا برم همو خانه غزبی نششتانگ از شما اینجا را تعمیر کنیدان که سخف رو سرمان نرمبد نرم بند صندوقی هم هر چست و نیست ببریتان و چشن نقض به من برسانیتون عبدالباقی از جا برخواست آی پسر بیا ببینم رعیت شندره پوش دوباره پیدایش شد به بشاره میرزا در صندوق مخمل را باز بازگرد. میرزا چند قواره پارچه نبریده و دو تاقشال کرمان و یک جبه ترمه از بیرون کشید و کنار گذاشت. هر کدام را که در هوا تکاند چند دید و پروانه را به جنب و جوش داشت و به سکینه خانو گفت ایران همه لغم لغمه است ببورش چیز زیادی نمیشد برام. سکینه خانو گفت دیه هر چه بشه. میرزا قواره‌های پارچه و تاقه های شال را تا کرد همراه و همراه جُبه‌ی ترمه در چادر شبی که از روی رختخواب پیچ گوشه اتاق برداشت پیچید و با نگاهی به دختر سکینه خانم گفت سفت این دختر از زودتر بندازید آن زخم دارد همه تنشم میگیرد می‌گیرد مشد و بال گردن تا سکینه خانم سری با آهستگی جنباند و گفت «هم حاضر از با جوشان در روی پارچه کشید و سرش بست زرزر دختر شد. من نمیخواهم درد دارد من نمیخواهام سکینه خانم با بیحوصلهگی تکانی به خود داد گوفت بیصدا بیصدا بعد از شلوغ نکن حالا که نه فردا فردا فردا خداست دختر نگاهی قهراگین به میرزا عبدالباقی کرد و خودش را روی تشچهی مادرش بیشتر جمع کرد و زیر لبی به نقنقها ادامه داد بعد از رفتن میرزا عبدالباقی مدتی سکوت بر اتاق خود فرما بود زکیدنهای دختر تک کشیده بود سکینه خانم زیر چادرش چرت میزد و ملا صالح دست را از روی گونه بر دندانها چسبنده بود و درد را قرقره میکرد در این خانه چرا خاموف بود و آسیامی گشت بالاخره سکوت را ملا صالح با دو سرفه شکست و به سکینه خانم که کمتر کنجکاوی برای دانستن قصد او از این دیدار نشان نداده بود گفت من به خیر و صلاح به ایدر آمدم خانم منزز سلطنه بندر وکیل در توکیل فرموده است تا دختری برای عباسخان پسند کنم از آنجا که من با آغازاده ها نان و نمک خوردم گفتم لابود است حتی بر من واجب است همشیره آغازاده ها سبیه سرکاره به نکاه ایشان درارم تا حق نان و نمک ادا کرد. سکین خانم مجسمه بار نشسته بود و فقط سرش چون گربه گچی تکندهاش. ملا ساله ادامه داد. نه والا به قمر هاشم نه برای جیفه دنیا هیچ ابدا برای عجر اخروی و سلام و سلام. با آب بینی را به کمک آستین عبا بالا زبط آمیز عبدالباقی فرمایش فرمودند که صبیعه و بال گردن است. از کناب که نخیر ها شب کار تمام است به سلامتی. یه جزی مخارش دارد که یا فیلم مجدس مرحمت میکنی تا یا حواله میفرمایید تا از آمیرزا در غزوین وصول شد به سر عزیزتانش توفیر ندارد والا اغذب باشد که عیاب و بنده تعمین شد و امورات خیر تاخیر نشد نگرانی فقط همین است که تاخیر نشد و اله همم میتانن ملا ساله جانن و مالان وقف است برخن کلا دل رقیق استیه چیکنه ملساله چشم های تراخمی را تنگتر کرد و نگاهش را پیکل نحیف و چادرپوش سکینه سکین خانم دوخت و چند لحظه در انتظار تأثیر حرفش ماند. و چون جز سرجم جوابی نیامد با سینه را با صرفه ای صاف کرد و گفت اقبال سبیه بلند است. والا بلند است. با یه جزئی مخارش بلکل ناقابل از امرو به سرداس ها به همه چی مشه. از قدرتی خدا حالا نظرتان چیز است سکینه مختصر تکانی به خود داد و زانو را بیشتر به بغل گرفت و بالاخره با خستگی گفت اختیار با خودتن ولا دیه هرچه میشد چه خیر و سلاخس میشد حالا که تالان تالان است من هم زیر پالان است مالا سالح به تقلید از رفتار امرانهی آقا میرزا عبدالباغی صدا را در این سرای بی صاحب بلند کرد. وای پسر بیا یه چای دیه بیار. میخوام سیغه یه جاری کنم دهنم خوش کرد.